بسم الله الرحمن الرحیم در بحث تمیز بودیم درسیون هم در قسمت اول تمیز مفرد و تمیز نسبت خونیم در قسمت دوم, دوم تمیز کنایت عداد می خونیم دویسلوزه هو حکم مميز کمل استفامیه حکم مميز کامل استفامیه چه؟ دویستویی ماهو حکم مميز کامل خبریه حکم مميز کامل خبریه چه هست؟ ما هو حكم مميز كاي؟ حكم مميز كاي چی ما هو حكم مميز كذا؟ حكم مميز كذا چی ما هو عامل التمييز؟ عامل التمييز چی است؟ اینا رو امروز توضیح می‌ده. دویست روزه ممیز. كما استفهاميه يكون مفردا منصوبا. میگه ممیزه. كما استفهاميه مفردا منصوبه. مفردو چی؟ منصوب. باند كم كتابا قرات؟ کتابن مفرد و چیه؟ چند کتاب خوندید؟ پس ممیز کمی استفهامیه چیه؟ مفرد و هزوه خود اذا فصل بینها و بین بفعل متعدد وجبت زیادتو من عليه میگه زمانی که فاصله و بود بین کم و بین ممیزش با فعل متعدی واجب اسکیجه یک بی رو اضافه کنیم واجب اسکیجه یک چی رو اضافه کنیم مانند کم قراتم فعل فاصله بده لذا در نتیجه بعد من کتاب کم قراتم من کتابه دو اذا دخلها حرف إذا دخلها حرف جر جاز نسب مميزها للتميز وهو المختار وجاز جره بمن مقدره نحو كم درهما أو درهمين اشتريت هذا الكتاب در درفايده شمار دوم زماني زمانك داخل شو برعان حرف جر يعني رؤية كم زمانك رؤية كم تي اماد حرف جر جائزه كي مميزش منصب بشه بخاطر تميز بودن و قول مختار و راج هم و جاییز که به من مقدر هم چی بشه؟ مجبور بشه. هر دو تا در ممیز جایزه میتونیم بگیم به کم در همن اشت تل کتابه میتونیم بگیم به کم در اشتره تا کتابهسی یا جز حذف و میز ها ادل عليه دلیل نوبعیزه میتونی حذف کنی زمانی دلیلی دلالت بر اون بکنه. من کم مالک در واقع چونیل هست. کم در همان مالو که اینجا ممیزه کم چی شده؟ حصد شده چهار کم تکونو فی محل رفع علال ابتدا خب علا خود کم توضیح میده میگه کم تکونو في محل رفع ابتدا اذا لم بعد بعدها فیل میگه کم محل مرفوع هست مبتدا هست زمانی که بعد از آن فعلی نیامده باشه مانند کم طبیبا فی المدینه چنتا پزشک در شهر هست اینجا کم مبتدا است و محلا مرفی که مبتدا مرفاتی پس کم اینجا مبتدا هست و محلا مرفو اوقع او عد بعدها فعل لازم هم زمانی که بعد از اون فعل لازم بیاد باز هم مبتدای و محلا کم تل قرت اینا هولیون به نیلیهی چند تا شاگرد چشمش خنک شده است یا روشن شده است امروز به خاطر دریافتش مدرک رو خب اینجا کم مبتدا هست و محلل درسته بعدش قررت فعل لازم اومده ولی فعل لازمه فعل چیه؟ لازم. پس اگر بعدش فعل نیومده بود یا اومده بود و لازم بود در حالت کم مبتدا هست و محلن مرفو. او فعل متعدد مشغل انها به یا نه فعل متعدی بود منتها فعل خودش مشغول به زمیر بود خود فعل مشغول به چی بود؟ زمیر یعنی اون زمیر رو منصوم می کرد اون موقع دیگه باز هم اینجا کم چی مبتدا هست و محلن مرفوم. مانه ده کم کتابا طالعته چند کتاب مطالعه کردی اینجا دروسه بعد از کم طالعته فعل متعدده ولی طالعته خود طالعته با هو چه مشغوله ویجوزه في الاخیره ان تكون في محل نصب بفعل المقدر بعدها البته اینجا در این حالت آخری یعنی کم کتابا طالعته جائزه که ما کم محلن منسوب کنی محلن چه کنیم؟ منسوبش کنی میتونیم مبتدا حسابش کنیم در این حالت آخری محلن مرفوع و میتونیم با یک فعل محذوف چش حساب کنیم منصوب منصوبش حساب کنیم یعنی مفعول بی پس در این در این چه که یک جای کار بیان شد کم اعراب بیان کرد که مرفوعه و محلن محلن, محلن مرفوع به خاطر مبتدا بودن از اینجا کار به بعد میگه و تكون فی محل نسب علی حسب ما یطلبها الفعل الواقع بعدها میگه و همچنین کم محلن منصوب هست بر حسب اون نقشی که فعلی که بعد از اون اومده چه, چه, چه نقشی رو طلب میکنه چه اعرابی رو با توانجب به فعلی که بعد از کم اومده کم منصوب ولی هر نقشی رو که ما بعدش خواست همون اعراب رو داره اگر مثلا مفعول بیهی خواست خب منصوب بیشه مفعول مطلق خواست باره دات کرایت کارت, کارت مفول مطق. اگر این کم کنا از م مفو... بود اینجا کم مفول مطلق است. ماند کم ارتفاتتا ارتفتا. چند بار این اون طرف چکار کردی؟ نگاه کردی چند چند بار نگاه کردی. خب اینجا کمه با مفعول مطلق است چرا؟ چون بعدش مصدر اومده الارتفااتتا؟ وإذا كانت كنايه عن ظرف فكانت مفعولا فيه اگر بعدش ظرف اومده بود یا به عبارتی كنايه از بود مفعول فيه و مانند كم يوما نسلط که انجا کم مفعول فيه هست نقشش منصوب هست اونجا مفعول مطلق بود و منصوب بود محلا انجا مفعول فيه محله منصوبه و اذا كانت معموله لفعل المتعدي بعدا كانت مفعول به و زمانی که معمول فعل متعدی باشه که بعد از اومده انجا کم مفعول به واقع میشه مانند كم مجله حررته چند با جله تحریر کردی خب اینجا کم مفعول بیهیه مانند کم رجولا رأی که اینجا کم چیه مفعول بیهیه حال فعل ناسخ رکانت خبره. یا اگر بعد از اون فعل ناسخ خومده بود از افعال ناقصه مثلا اینجا دیگه خبره. خبر فل ناقصه حساب بشي جينا حساب بشي ما ند كم كانت جواريك كم كانت جواريك جواريك كي جاء كم خبر كانه است خبره و وتكون في محل جر اذا تقدم جار او مضاف وهم شنو كم محل مجرور هسه زمانك قبل ازون حرف جر بياد يا مضاف واق مضاف اليه واق بشي يا قبلش مضاف بياد ما ند بكم ابتعثت دار به چند خونه رو فروختی خب اینجا کم مجرور هست محلن با حرف جر غلامه کم رجولن علمت غلامه چند مرد رو یاد دادی اینجا کم با مضافیه مجرور هست پس کم میتونه مرفوع باشه میتونه منصوب باشه و میتونه مجرور باشه و مفاصلن اعراب شده گه توضیح داد دوی سو بیس ممیزو کم الخبری یکور رو مجرورن به اضافت یا يكون مفردن نهو و غالباً یکون مفرد نه کم اجیرن فی بیت آبی و یجوزن یکون مجموع نه کم کتبن لی و یجوزن یوجر بمن نه کم بیمارتا شاهدته فرقی نمیکنه خب مگه ممیژه کم خبریه مجرور هست با خاطر مزافبوته نکم به او با خاطر مزافبوته نکم به آن و غالب این است که ممیز مفرد باشه مانند کم اجیرین فی بیت ابي که اینجا اجیر ممیز ما هم مفرد است و هم مجرور. و یا جوز این یکون مجموعا جائز است که جمع هم باشه مانده کم کتوبین کتابه زیادی من دارم کم اجیرین فی بیت ابي؟ اجیرهای زیادی در خانه پدرم هست کتابه زیادی برای من هست وجايزك بوسائل من المجهول شو ماند كم من مرات شاهد يعني دفات زيادة من مشاهده مشاهدة كردم.فوائد إذا فصل بينها وبين مميزها وجب نسموه الامتناع الإضافة زمان كي إذا فصل بينها وبين مميزها وجب نسموه الامتناع الإضافة زمان كفاسل وما بين كم خبرية ومميزش وجايز كي منصوب باشه واجب است که باشه چون اینجا دکه نمیتونه کم به سمت ممیزش مضاف بشه باعت پس باید مچی بشه باید باشه ما کم لی ابدل که اینجا بین کم و ابدل فاصله هست در نتیجه ابدل باید منصوب باشه ابدن باید باشه ابدا زیادی دارم دو یجوز حذف و اگر دل علیه دلیل ممیز جایز حس بشه زمانی که دلیلی بر آن بکنه بانه ده کم خست یا کم بحر الالبی یا کم خوزت بحر الالبی در از بوده کم خوزت خوزت یعنی تو فرو رفتی در دریای علم خوب که اینجا کم خوزت به ببینی فرور رفتن به معنی چی؟ که اینجا خوزتین که ممیز باشه حصف هست مثل این که من بگم کم ضربتین ضربتا کم ضربتا بگم بگم چی؟ چقدر زدی؟ زدی تو سه وجوه اعراب مثل میترو کمیل استفابیتی برا خلا خب ببین اینجا ما دو کم خودیم کم خبریه و کمه کمه خبریه در لحاظ اعرابی مثل کمه استفابیه هست هیچ فرقی؟ یعنی بیتونه معرفو باشه محلن بیتونه محلن منصوب باشه و بیتونه محلن چی باشه؟ مجبور باشه دوی سلسیه که ممیز و کعین یکونو مجبوره. مجروره ببین اما ممیز کعین مفرد و مجروره معنید کعین بین رجل رأی تو کعین بین رجل باله که اینجا ممیزه کعین که رجل هست به من مفرد هست و چی هست؟ من مجروره. فایده و یجوزو نسبوه علاقله جایزه که منصوب هم مال کعین ولی خیلی کم و لا ان یخبره ان کعین الا او شبیه فلا یقالو من رجل اجبنو من امراتن. اینجا یه نقطه دیگه میگه میگه جایز نیست که خبر داده میشه از کعین مگر به جمله یا شرح جمله یعنی تو نمیتونی خبر کعین رو مفرد بیاری یا جمله شکنی یا شبه جمله ماند کعین به رجل اجبر و به امرتی چقدر مرد که ترسوتر هستند از زن خب اینجا کعین خبرش اجمن هست و اجمن مفرده پس این ولی میگه میگه این درست؟ نیست که اینجوری گفته بشه پس جایز از نسبه ممیز کعین ولی به شکل کم به شکل کم یعنی کم این حالت پیش میاد این یعنی خیلی کم و جائز نیست که خبر بیاد از کعین مگر جمله باشه یا شمه جمله در نتیجه جائز نیست که ما بگیم کعیل اینجوری اجبرو بین اینجا خبر ما چیه مفرد. 222. خکم و ممیز کذا ای کنه مفردن منصوبن علی تمیزی؟ دائما. ممیز کذا بگه همیشه مفرد و منصوب باشه به خاطر تمیز بودن. همیشه. بانند اشتره تو کذا و کذا کتابن که کتابن تمیز هست منصوب و مفرده. منصوب که؟ 223. عامل و تمیز فیلم مفرده؟ خو خب اینجا عامل تمیز رو داره توضیح میده در قاعده دویست دویستو میگه عامل تمیزی فی المفردی الاسم المبهم عامل تمیز در مفرد اسم مبهم است عامل چیه؟ اسم مبهم بانند اشترای تو زراعی جوخن دو زراع پشم خریدن خب اینجا زراع چه چیزی تمیز و منصوب کرده؟ جوخن آ... تمیز ما هست آملش چه هست؟ اسم مبهم هست زرائن هست چه پس عامل تمیز در مفرد میشه چیه؟ اسم مبهم تمیز مفرد جوخنه پس خریدم دو زرائه پارچه پشمی اینجا جوخن مفرده آملش دیگه اشتره تو نیست بلکه زرائن هست بلکه چه و فیل جمله تی و آمله تمیز در جمله در نسبت فعله در چیه؟ ماننده قرار تو بیکه اینان اینان با چی چیزی شده منصوب شده؟ با قرار تو با چی؟ با که پس عامل در تمیز مفرد اسم مبه است و در تمیز جمله چی میگم در تمیز؟ از در تمیز نسبت فیل شه. او شب یا شب فیل. ما ند در روح فارسان که جا لله الله در روح فیلسو شب فیل. فواید خو داده. فجوخان منسوب به زرائن میگه فجوخان به منسوب شده و اینا منسوبان تو. و ایلن بوسیله چی؟ شل فیله با لیه دوله تقدیم تمیز على آمله مطلقا جایز نیست مقدم کردن تا تمیز بر آملش مطلقا یعنی نمیتونیم بگیم ایلا یقالو زیتن راتلون. نبیتونیم بگیم زیتن رتلون باید بگیم اندی راتلون زیتن ولا شیبن اشتا على رأس بیتونیم بگیم اشتا على رأسو شیبن اما نمیتونیم بگیم شیبن اش که اینجا شبن تمیز از نسبت، تمیز مفرد دیگه نیست